رباغ منظر چشم من مناشیانه توست شرم نما و, و فرودا که خانه خانه توست به لطف خال و خط از آرفان رو بودی دل لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش با که در چمن همه گلبان عاشقانه توست علاج ضعف دل ما به لب اوالت کن که این مفرح یاقود در خزانه توست به تن مقصرم از دولت ملازمتت ولی خلاصه جان خاک آستانه توست منان نیم که دهم ده نقد دل به هر شوخی در خزانه به محر تو و نشانه توست؟ تو خود چه لعبتیه ای سوار شیرین کار که توسنی چه فلک رام تازیانه توست چه جای من که بلق زد سپهر شعبد باز از این هیل؟ که در آن بانه بهانه توست سرود مجلس تکنون فلک برقصارد که شعر حافظ شیرین سخند ترانه تو